بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی انزازم نهایت بارش بیگمان به تو چشمه کوسر را دادی پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن بیگمان دشمنی تو یعنی کسی که تو را وزشتی یاد میکند ابتر یعنی دنگوریده است